إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى إبراهيم إنك انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلات و سلام على رسول الله صل الله علیه و سلم رب اشرح صدری و یسل لامری و احلوقت من لسانی یفقه قولی مسلمان های محترم احسان خدای عزا و است که باز هم برای ما و شما فرصت داده شد که در این ماه مبارک رمزان هم در قید حیات در قید زندگی باشیم و باز هم ای دو این دهه دوم مای مبارک رمضان که دهه مغفرت است دهی از خدای عزوجل مغفرت بخوایم و با اساس رحمت خدای عزوجل از گناه هایی کردیم اشتباهاتی کردیم از اون توبه بکنیم و به شکل خداوند متعال از خود راضی بسازیم. بزرگترین نعمت خداوند نعمت فرصت است بسیاری کسایی بوده که سال گذاشته که ما و شما بوده ولی امسال همین فرصت نداشته بسیاری وقتایی که ما شما از می قبرستان تیر میشیم خدای مرده ها حسرت میخوره که وای به حال شما مردم فرصت از دیست مارد چانس نداریم وقت توبه نداریم دفتر اعمال ما بسته شده کار نکرد ایناله خوشا به حال اون انسانی که فرصت دارد فرصت داره واضی فرصت استفاده کرده و رحمت خداوند به خود بیست بسیاری مردما هستند که ماه رمضان میاید و ماه رمضان ختم می شود این خواص علامات آخر الزمان است که هفته مثل روز میگردد ماه مثل هفته میگذره بسیار وقت کمی نهاله در حدود من فکر میکنم که امروز 15 چندم رمضان است یعنی تخیر نصف ماه این باره که رمضان خلاص شد و هیچ نه فهمیدیم فقط میفینه است. سوال سوالینت اساسا مادر اولاده و اشتکار تقاضا میکنه که یک دزیک است و ماشین کلچ بیارو تیک بیارو لباس است. تو توره بسیار کم است و شیطان کوشش میکنه که یک انسان مسلمان در اینمی ماه مبارک رمضان که ماه رحمت است، مای مغفرت است، ماه خلاصی انسان از آتش دوزخ است ولی بدبختانه کسایی هستند که غافل هستند. غافل است. وقتی که غافل است با وجود اینمی که فرصت بروش است، این عدالتی ای ای را انوز و گمراهی میگشود. در ماه مبارک رمزان نه از رحمت استفاده کرده نه از مغفرت استفاده کرده و نه تانستان از آتش دوزخ نجات براده فرصت هست انسان غافل از فرصت استفاده نم بیکنه کسی میگه وقت مرگ دیدن گفتا تو کی هستی؟ گفتم من مرگ, مرگ هست خب تو مرگ هستی؟ چی میتونی؟ وظیفه میره میستی هرکس که نوبت مرگش رسید و روحش قفز میکنه. گفتم ما تو خندوال شده ماین مگه میمرم مرا خبر بده مگه میمرم مرا خبر بده که ما چه وقت میمرم باز پی شده مرگ آمادگی بگیرم برای مرگ خود بعد از ای برش بسیار میکن. میکن. ای مرگ این بار خدا بیشتر خوب اسما برات فرصت میده خبرت مگه خب این خبر فامیده دیگه قال خب مرگ اندیوال میشد و مرا خبر میکنه اول دیگه مبرم یه ذره عیاشی کنم و برم چکر خدا بزنم هر وقت که باز وقت مرگم رسید، ما بازی را خبر میکنم. دیگر روز وقت مرگ ازی میرسه و مرگ در جان ازی میرسه که این نوبت رسید، آلا امروز روحی تو باید قبط شد. و باشه میگه تو حجب تو برما من تا بید که تو فرصت داری باز را خبر میکنم. میگه خود خب ما خبرت کردم چندین خط بردت روان کرد ولی تو هستی که خطا را می‌خوندی می‌دیدید مویسرت بر رفتن شروع کرد ما برت خط روان میکردم بل خبرت می‌کردم که فکرت باشه که نه ما اومده نیستم مویسرت ریف شیطان برد میفت که او رای ندار با اون جگه تا پچکاری که پس موی ساختگی برد جور بود. پس با موی ساختگی خدا جوان ساختی. پس خدا از دادی در فکر مرگ نشوند. وقتی که موی هایت ریخ پشتی که چامپو گشتی که باش که شامپو استفاده بکنم که موهایی نریزه. وقتی که دیدی سر صفیه شد ریشت صفیه شد. آمدیسه رنگ گرفتی و ریشت سیاه کردی و سرت سیاه کردی ریشت هم چه کردی خوب روی بلبل کنن خود جوان جلوه دادید ولی جوان است چی مانا جوان استیم؟ یعنی مرگ دور است دیگه از ما وقتی که کمرت کپ شد تابلیت گرفتی که باش ولی ما کمر درستم بر مردم خیلی نشان بتو کنیم دندانای دریف دندانای ساختگی ماندی با دندانای ساختگی عقل جوان نما بول چاگان اکسای جوان جانان مال و بسایل کدی یگان خاندان ماندگی رسد ما جوان هستم اینم یه علامات بود که ان ازی بود که مرگ دگه مرگ میه و بد خبر دادم لکن تو غافل بودی خودت خود فریب می دیدی یعنی بسیاری که هستن بسیاری بیچاری که فکر میکنه که والا ما دیگرها را پریب می مثل منافقین منافقین چه عادت دارن منافقین فکر میکنن که یخادئون الله والذین امن و ما یخذون الا انفسهم اینا خود فریب نمیدن. بسیاری کسان بر خود فتوا پیدا میکنه. ولی اگر من نماز نخانم، من عبادت نکنم، ولی ما مشکل دارم، ولی من تکلیف دارم، ولی ما قلانی دارم، روز به روز خدا فریب داده میدن. و این فریب کاری ازی با ایواز ازی که بردگر را زرن وقتی که رحمت خداوند آمد، در این رحمت تو شامل رحمت خدا نسانه. دهی مخبرت هست تو شامل مخبرت خداوند خدا نستخدی و دیگه اینه دهی ات النار آزادی انسان ها از آتش دوزخ ای همه و تو به تفاوت ایروزات تیر میشه و تو قرار حتی بسریک ازازه مزید ها وقتی که می برشکیت گفت دین هم بزنیم و گوشش نیست فکرش دیگر طرف هست یک قسم قریشان هست چورک زیاد میخرک باش یکانی که, که زیاد ساعت خدا سهل میکنه میگه پاچ تو زیاد خلاص شود. من. زود برایم که برادر عزیز ماه مبارک رمضان وقتی که آمد در ماه رمضان هستیم دم دم دم. کلگی میگه خوب حدیث شریف هست رحمت خداوند است مخبرت خداوند است آزادی انسان از آتش دوزخ است، لکن ما تو چی کنیم؟ وزیفه خدا پستان کنیم من چی کنم؟ امید چیزات کنش هست آیا ما خدا مستحق ساختم یا نساختم؟ آیا ما خدا مستحق ساختم به این رحمت خداوند آیه ش... ده لیست گناهایی که دماغ پرات خداوند شامل هستند من هم شامل هستم و آیا وقتی که آزاد میشه مردم از آتش دوزخ من هم از آتش دوزخ خات خلاص شدم ما چی کارهایی کردیم در رمضان که قبل از رمضان میکردم این توبه کرده باشم و آل ده ماه مبارک رمضان مستحق مغفرت و رحمت خداوند شوم قبل از رمضان غیبت میکردم آیه ده ماه مبارک رمضان غیبت ترک کردیم و توبه کردیم؟ نه. قبل از رمضان چتیات در ددان دوکان میشیشتم و ما دیده ایم ریشت از ددان دوکان شیشت از احالی امین مسجد هست اینجا ما درس تفسیر قرآن میدادیم وقتی که برامدیم دیدیم ایم ریشت از ها ددان دوکان ساد هستن یکی دیگه خدا دو میدنن دشنام میده روزه بدانت هست از خدا بترس. چه وقت توبه میکنید؟ چه وقت رجوع میکنی؟ ما این مبارک رمضان از تو به مغفرت خداوند داخل هستی حتی در مسجد هم که داخل میشه د دا مسجد هم وقتی که داخل میشه غیبت می اما سید عمرت گفت داخل میشه غیبت میکنن. ددوانو کجا اینو تفسیر و قران از ما بیشوره می احالی موجود خواستم گفتن بیا استاد نه فاض از نماز دیگه گفتم صحیح است من مانده و زلمه براش درس تفسیر میدم لکن برام بدن ددوان دروازه زایید که خوب خدا شیخ میگیره خوب خدا فاض میگیره خوب خدا با تقوا میگیره لکن در ماه مبارک رمضان انسان که دروغ میگه دشنام می ده غیبت دیگرارا میکنن، چتیاط میگه بچای جوان سعی کنه که ریش سفید اونجا غیبت میکنه بچای جوان کنه که ریشت افیده که دیگه خدا ها در ماه مبارک رمضان لعنت خدا و قذب خدا نازمه تو چی تو مسلمان استی؟ تو چی قسم تقوا داری؟ تو چی قسم از رحمت خداوند مستفید میشی؟ تکبرت ترک نکردی برادر؟ تکبر رو ترک نکن در ماه مبارک رمضان هم انسان های هستن که تکبر میکنن رمضان خود تنها بر از اینه این که ما دانه خودن پیامبر صلی الله علیه و سلم میه که اگر یک نفر دان خود از خوردنی ها و نوشیدنی ها بند کنن لکن از گپ های زشت و بیهوده از این دوری نکنه از حرام دوری نکنه از دشنام دادن مردم دوری نکنن از شیشان دادن و ها مثل بچهای لندغر و ری سفیدا که دکان دوکان بشینه ریس سفید از برای خدا آدم بکنه؟ او که از خدا نترسه او که از خدا نترسه به خداوان به در درد نداره که تو بخور جزا و خوراک که تو ترک بکنی بسیاری کسا روزش مثل روزه است، روزه حیوانی چی رو که در دان بسیاری حیوانات مردم یک تو در پوزبان در بسته میکنه بازی با پوزبان دانش بعد از نان نمیخوره او نمیخوره لکن گوشت مردم هم میخوره با غیبت از غیبت تو با از گفهای بیهوده توبه بکو از حرکات شیطانی توبه بکو بس ما چی خزم در رحمت خداوند این دهی دهی مغفرت است اما یک نفر از خود پرسون کنه که آیا مد دهی مغفرت در مغفرت خداوند متعال جل, جل او داخل در آخرت میونه هستم با این غیبتی که میکنم با این حرامی که میکنم از پول حرام غذا میکنم از پول حرام خورما میکنم خورم. افطار میکنم از پول حرام پس و سحری میکنم روزی منو خدا خاطر قبول کرد. دانش فهم خوییست که انسان عزت عمر را دلاتالانهو برای بچه خود نفتی ای بچه اگه که من پیش ازی که کسایی را محاسبه کنه خودت خود محاسبه بگو که اگر در روز قیامت من استاد آیا در جمله کسایی که در رحمت خداوند است نام داخل شدن ادیقل بگین از علماء پرسان بکنین کی نامش در رحمت خداوند داخل میشه انسان متکبر انسان خودخواه انسانی که درس قرآن ترک کرده میره در دا دون دوکان غیبت میکنه انسانی که درس قران ترک کرده میره دشمن میتند انسانی که در مسجد هم غیبت میکنه انسانی که در خانه خود هم غیبت میکنه انسانی که از حرام تغذیه میشه این هم مورد مغفرت خداوند است کی میگه رحمت خداوند وقت سر انسان نازل میشه که وقتی سر از سر فکر می فکر می ما اهالی از این هستیم آقا آه والا اهالی از این مسجد هستیم اینجا داره حفاظ جور کردیم کاریای قرآن هستن قاری قرآن شکایت میکنه که استاد ما ده سحری خودگذایشی نداره وقتی که برای اونجا خوشگمایی کنیم تا کلونو با بند نمونن و ما توی منطقه کسایی را میشناسیم که اگر از شام به خدا میمونی تا خانیش بری شاید 10 کس باشه وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفت که والله لم یؤمن قسم با خدا که ایمان نوادن والله لم یؤمن قسم خور که ایمان نداره قیل من یا رسول الله گفتم که یه پیغمبر خدا ایمان نداره گفت کسی که با شکم سهیر شو خوب کنن همسایش گرس نباشه همسایش غذا نداشته باشه ما همسایی موتو غذا نداره همسایی موتو غذا نداره که بخوره. سهری را و خاطر غریبی خود سهری نمیکنه. پیش از سو معاون داد و بگال کودا مزیتشان را رفتیم دست بشه کل مردمایی که در نماز تراوی بودن، در نماز تراوی بودن گفتند نیم مردم نماز تراوی را ترک کردند. سو امروز مراتم آن دو منطقی بالا که کاریسای تاهر اونجا مردمو ترک خود بالا کد رفتنی کرد میاد که. از کرد. آمدن پیش من گفتند استاد مارشال دو سه چهار سب بودن دو سب ترک کرد. مزیت ساخس نداره، مزیت شیشه نداره، کلچین نداره. آیا غذا به خدا نازل نمیشه که ما بر اولاد خود و خانوی خدا بیشتر لکس جور میکنیم، بسیار لکس جور میکنیم، آخرین استایل استفاده میکنیم. او که در پرده لکس نیست بر خانه خود میکنیم و خانه خدا در نزدیکی ما. اونجا خانه خدا بام نداره خانه خدا کلیم نداره. چطور روزی ما رو خدا قبول کرد؟ از قلبش خود محاسبه است. آیا روزی کس را قبول نمیکنه که در خانهش دکسام غذا سر میزش مانده باشه؟ و. امسایش در سحری یک کیلو گوشت داشته روزی که خدا قبول نبرد یک قلب شوزدار دل مهربان داشته باشه از خدا بترسد رضای خدا با فقرا و مسکینا تقسیم بکن رضای خدا به خاطر فقرا و مسکینا تقسیم بکن دید که چی مسکل است فورا پشت از این که فلانی نمیکنه. من ما باید مسئولیت ماست برادر کسی که پیسی زیاد داره مسئولیت زیاد داره مردم های از غریبا و فقیرها که 500 سال باد در جنت می رسد چرا؟ 500 سال باد می رسد خاطر زی که در پل سرات هر فقیر من در مقابلش استاد میشه که تو پیسادار بودی از آلت ما خبر داشتیم تو بر کالای بر اشتوکایت لواصی اید خریدی. آیا کدام متر دکه برم؟ اونو وقت باز دم مغفرت خداوند. الرحمونا یرحمهم هم الرحمان. صلی الله و نیب سلام نیه کاش کسی قلب است سر رحمت خدا نازل نمیشه. دهی رحمت آمد، دهی رحمت ختم شد، دهی مغفرت از ختم میشه، دهی آزادی از آتش دوزخ نیه خلاص میشه. ولی بیشتری کسای حس کن لست شنوزه لست دوزخی هست. خدا ما شما رو میگه. و چی قسم خدا نگاه میکنه؟ تنها با دعا کردن نمیشه. وقتی خدا نگاه میکنه، یا حقیقتا دل مهربان داشته باشه برای فقیر و مسکین و بیچاره. حتی عقل بگویم که این ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن است و مسجد مردم پوش ندارن بیام ما یک چادر زدارم از چی بخواد یک قسمی از این نیست که تو پائسه کم داری. ببین برادر، من پیش صحبتیدو مسجد گپ میزنم، مفتو مگر تو بتونی دو مسجد یک دونه کلچینگ بخری. میگه کسی اگه مزید رو جور بکنه خداوند خانه در جنت برایش جور میکنه. اگر تو خانه جور کده نتانیستی اگه در کلکین هم کنجا جور بکنی ادقال جای یک کلکین هم که در جنت داشته باشی یک کلکین جنت به اندازه هزار کلکین دنیا است. بکی در مقابل از خداوند در تو عشر بید. ولی انسان که به تقاوت انسان که بیتفاوت است وقتی در مقابل فقیر که بیتفاوت باشد در مقابل مسکین بیتفاوت باشد همساییش گشنه هست در مقابل از او بی‌تفاوت باشد زبان خدا کنترل نکند فطر خدا کنترل نکند اونم تعصب و قومپرستی و بدبختی انو زم در قلب از وجود داشته باشد او بدبختی یا انو زم وجود داشته باشد خداوند متعال جل جلاله هیچ وقت سر لطف رحمت خدا نازل میشه وقتی که ما خودا شایستی رحمت خداوند بسازیم از این خاطر برادران عزیز در ماه مبارک رمضان بسیاری فساح هست مگر هندوست پرای خدای ناراضی دراوی که ما به این شکل میخانیم ما بسیاری از علما شکایت دارند برادران اگر تراوی خواندن نمیتونی اگر ایستاده شدن نمیتونی اگر جوان سی خدا از قلب تو غیرت گرفته که ریش سفید استاپ میشه و تو جوان خفت میبره برو کار شیطانو نکو برو قرار خوفو هیچ اما کسی که میایه برادر عزیز به این سیستم که ما نماز می‌خونیم به این تیسوزی که نماز میخوانیم، نماز وقت قبول میشه که به طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در قبول شدن اعمال دو شرط گفته علما دو شرط اساسی سه شرط است یک شرطش این است که شرط اوله که اخلاص انسان داشته باشه به خاطر رضایت خداوند کارا بکنه شرط دوم قبولی اعمال انسانی است که به طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر یک نفر نماز بخوانه ولی به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلام نباشه نمازش خدا قبول نمیکنه. روزه بگیره به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلام نباشه روزه‌اش خدا قبول نمیکنه. قرآن بخوانه به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلام نباشه قرآنش خدا قبول نمیکنه. ذکر بکنه به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلام نباشه خداوند ذکرش قبول نمیکنه. خیرات و صدقه بکنه به طریق پیامبر صلی الله علیه و نباشه خدا خیرات و قبول نمیکنه. درست است که خاطر می کنه است که تراوی میکنید. کنه ادیعقل افسریات قرآن علم دارید علما کم نیست شما فرسان بکنید که بگوید آیا در از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود پیغمبر یا صحابه کرام امی قسم تراوی که ما می خونیم خوانده امی قسمی که مولای عیسی ماشل می که باید در الحمدلله را دا یک نفس بخونه آیا یا پیغمبر خدا در زندگی خود الحمدلله را در یک نفس خواند که الحمدلله رب العالمین الحمد. در زندگی نخواهیم اگر کسی سنت پیدا کرد یالا بیا بیا و دروغ می ما تمام احادیث پیغمبر وقتی که احادیث پیغمبر وقتی که خواندیم در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم امیخ سما بده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز میخوان که در هر آیت توقف کرد الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اینی نماز خدا قبول میکن تو اگر مسلمان استی دیده که قاری قرآن یا مولای مزیدت یا مولوی تیسز میخوانم برای بگو از خدا بزرس به طریقی پیغمبر خدا بود. اما بساری جوان هست میست. خواهی تو برما ایجیگی میخونید؟ قالیش هم که زیر زبر درست روز خان خوبه. اگر نه کتیس اگر مطابق طریقی پایگاه باد ورطت ال قرآن خداوند مطالق گفته ورک ورطت ال قرآن ترتیل قرآن با ترتیل بکاریم با تجید بکاریم. الحمد رب العالمين مدت ادا کنین شدش ادا کنین ادغامش ادا کنین اخبارش ادا کنین. در اون صورت وقتی امر خدا را قبول کردند نماز تراویق قرآن عالمت به ترتیل خان. فرق نیست در کتاب نامده پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرام 22 رکات در نیم سات باشه مثل که ما مردم به افغانستان خدافریب میدیم برادرها خدافریب ندیم برادرها نماز بخانین کوشش بکنین ای به دردت اگر 20 رکات خواند نمیتونی ده رکات بخانم سعی بخانم اش رکات سعی بخان بخانم ایچ نخوند مردم بانک سی نماز. بخان. باید که از یقال در را بخون. چرا شلکی میکنی؟ گناهی کله کی در روز قیامت سرتون میجوشه. اگر یک روش منطقه مولای مسجد است، ماکم میگیره. و برش میگه مولایی صاحب در نیم ساعت تراوی رو بخون و اون مجبور میشه به خاطر از روش سفید تراوی را در نیم ساعت سود خوانده میره. در روز قیامت اگر یک هزار نفر در این مسجد هستند، گناهی یک هزار نفر سر زمین ایش میشه. اگر ملای مسجد به اساس پیشنهادات امر مردم مخالف امر خدا و پیغمبر در زد طریقی پیغمبر نماز می نماز می دست،, دست،, دست مردم در روز آخرت در اخرتی با می باشه کنید مخواه نمی پا می ده مولوی تو چرا تو برابران اکوار می تو چرا این قسمی برادر عزیز در این مخبرت است بین تراوی خدا اگر نیم سات است چل دقیقه ساسی است چلو دخانیش چلو پایینه. شما سعی کنید در مزیت عربستان سعودی شاید یک سپارا میخوانم یک سپارا در دو ساعت میخوانم. <تصفح> یعنی ریشتهای داره سعی کنید دو ساعت استاد است نماز تراوی میخوانم. موت دو ساعت کنم میتونی چلو پایین دکه خوبه بخوری. یک ساعت خوب یک ساعت کنیش. از اخلاق آیا اوریشتهای دس با موت فرق میکنه با خدا ملی بسیاری از ریشتهای دو از جوانان که در غیرتاشان چرا برادر، بیا سر ساختمان فیزیکی نیست که کی جوان است که پیر است مرمی سرگلوله مرمی تاسید ندارد ولو که سرگلوله را از طلا هم جور کنی وقتی که باروتش خراب باشه و بدل باشه که فای کنی فست که کردن افتاد باروت مسلمان ایمانش است ریش است که ایمان قبی داره دو ساعت ساده شده ریش سفید دیده اما جوانی که خوب جوان است و تمام روز سپرده آمیگر و یا خنای خدا قبلاً تندام چهار نشان می‌ده که نماسه بین اندام دارم، لکن ایمانش ضعیف است نیم ساعت کمرش مشکل است. چه سر ایمان است؟ نه سر اندام؟ چه سر قوت ایمان است؟ بین که در ماه مبارک رمضان قوت ایمان رو خلاص جور بکنیم. کسی که در ماه مبارک رمضان با تقوی نشد روزی از او فایده نکرده. شما ببینید آیه قرآن است. کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میگه فطرش ترظیم مبارک رمضان سر شما مثل که ای روزه فرشته بو سر امت های قبلی چرا لعلکم تتقون شاید که شما تقوا فلسفه رمضان چی هدف رمضان چی چرا روزه میگیریم چرا شب عبادت میکنیم چرا 24 ساعت باید مطابق امر خداوند حرکت بکنید. به ازی که بر ما تقوی حاصل شد. تقوی حاصل شد. کورس از مبارک رمضان برادرهایی که در ماه رمضان نماز می مستقیم دادگان تقدم می و از رمضان استفاده کرده برشان تقوی کرس تقوی است. ماه مبارک رمضان کورس تقوی است. که آدم متقی شده. و یازده ماهی دیگه مثل ماهی مبارک رمضان واره ارتباطش با مسجد باشه ارتباطش با جماعت باشه ارتباطش با قرآن باشه تقویه داشته باشه این ماه هست که ما ترگیه میشیم که تقویه رو یاد دیگه و یازده ماهی دیگه تطبیق بکنم کسانی که بعد از ختم رمضان مسجد میکنن جماعت تقمیگن و تنها در ماه مبارک رمزان نماز می هیچ فایده نکنه چرا تقوی حاصل شد اگر تقوی حاصل می شد کورس رمزان سرازی تاثیر می کرد یازده ماهی دیگه از مسجد دوری نمی کرد بران کسای هستند که در ماه مبارک رمضان آشتی با خدا کرده کسای هستند که در ماه مبارک رمزان پیش از رمضان که خدا جنگی بود آدمی که نماز, نماز نمی که خدا جنگی آدمی که نماز نمی خانه خدا گپ نمیزنه. آدمی که نماز نمی خانه نیمتهایی که خدا برش چشم و گوش و قلب داره از این انکار داره. نماز خواندن گفت زدن از با خدای اصلا چند روز پیش یک قصه برطان بکنم یک فیلسوف پیش مانده. این فیلسوف برمه چی میگه؟ گفت استاد ما ای قسم در فلسفه خوندیم. که روح انسان که است در این جسد جسد مثل قفص وارست روح انسان در داخل این قفس بندی هست روح ما در داخل از این قفص بندی هست بینان ما همیشه جگر خون هست چه وقت ما روح ما احساس راحت میکنم وقتی که از این قفص پرید و به ملکوت خداوند رفت از این دنیا رفت باز روح احساس آرام شد یه گفت یک نظر فلسفیست یک چند تا شیرام خون که فلان فلان فلانی شیره خرید. من برای کسیم برات در روح کافر است. روح کافر است که نه جسد بندی است ولی روح کافر وقتی که آزادام شود احساس راحت نمیکنه. حال روح مسلمان چه گفته است؟ گفتم شما می‌سازیدنی زندان است. یک نفر در زندان بندی است. این نفر که در زندان بندی است چرخ دو است. است. احساس خستگی و دلتنگی می‌کند. ولی وقتی که موضوعه مثل کاردیوالی دی. خانه بر خطیور کردین تا خانه کته برادر خود کته امسر خود کته دوستای خود ملاقات میکنین اگر چی خانه هم ساختمانش مثل سندار ورس چارد دیوالی داره دیگر بام داره چت داره دروازه داره دروازه بسته میشه کل میشه ولی ازیک ما در اینجا این انسان در خانه خود احساس خستگی نمیکنه اینمی جسد که است برای انسان کافر مثل زندان است، زندان هست. اما ای جسد برای یک انسان مسلمان مثل خانیش ایش روح ما در جسد ما بندی نیست. مثل که در خانه خود زندگی میگیم. چرا؟ تو میگی وقتی که ما جسد از روح ما از جسد برامد باز با ملاقات خداوند میرم. ما میگیم نه. پیغمبر خدا میگه نه تو پنج روز در روز پنج مرتبه با خدا ملاقات میگیم. هر وقتی که نماز میخونی، کتی خدا گپ میزنید. وقتی که قرآن مشنوی، خدا کتی تو گفت میزنید. بندی چیست؟ وقتی که سجده میکنی مسلمان، در حالت سجده بین خدا و بین انسان تمام پرده ها برداشته میشنید. حالتی که انسان به خدا بسیار نزدیک است، وقتی است که انسان در سجده باشد. به خداوند نزدیک باشد. بنام ما 24 چهارصد که خداوند ملاقات میکنیم. میخوایم خدا کتر ما گپ بزنه؟ قرآن میکنیم. میخوایم که خدا قلب بزنیم؟ نماز میکنیم. در نماز با خداوند دعا میکنیم. با خداوند حضور میکنیم که پروردگار ما مبارک رمضان است ما دیمه مبارک رمضان تو پیغمبرت بر ما خبر داد و ما ینتقو ان الهوا و پیغمبرت از دل خود چیزو گفت نمیزنه این هو الا وحی یوه پروردگار در این ماه مبارک رمضان که آل دهی مغفرت است خدای من مرا در لست مغفرت کنه و حساب بکنی بنان مسلمان وقتی که این دعا را کرد میفهمه که با گیر ارتباط روح من با <تصفح> که مهربان است ذات مهربان است که این نعمت رمضان را برای ما فرصت گذاشت که اگر ما قبل از رمضان که تو خدا جنگی بودیم، نمی زدیم آ پس تووق کرده میگییم خدای امسال ع ما آمددم و ما این بارک رمزار نازذا شروع کردیم. خدای مض نیده بودم در ما این بارک رمزانال در م آمدیم. خدای مجموعی جمعایی بر مجد نمیدم حالا پنج وقت به ناز چه مع با خداوند تعهد میکنیم که پروردگ تا سال آین دی رمزار م ترک نمیکنم ما قرآننا ترک نمیکنم من از ترک نمیکنم این انسان است که انشا الله دلت به کسایی داخل میشه که مورین اختت خداون قرار میتاب بود. انسان که قلب مهربان داره با خداوند تعهد میکنه که پروردگار را اگر من دیگه غذای میخورم فکر میکردم که کی غذا نداره ولا دیگه هیچ چیز نیست خیر هست من دیگه واسه نمیره سفر اولاده خود دو کیلو گوشت میگیرم نه نه قاری صاحب کیلو هم یعنی قاری سایبایی که مسافر هستند باز از اینا هم پس شب یک نیم کیلو گوشت اضافه بکنیم کمر هیچ کس متوجه نمیکنه که بس کنه لو که شیطان شیطان خب شیطانای جنی بسته هست لکن بسیاری که اصلا نفسش شیطان داشته نفس خودش خودش نفسش داره خواب داره تو آزاد هستی می‌دگی نفس است تمام شده به خود میخواد لکن به خاطر رضایت خدا و این چیزی کارا نمیکنه برادران عزیز به می خاطر در ماه مبارک رمضان که فقرا و مساکین احساس در روزای اید می فقرا و مساکین باید احساسی چیز نکنند بسیاری مولای صاحب بسیاری مسالا را در روز عید میگن اما سرقیق فکر سرقیفت انسان باید سر از بتر صدقه فطر زکات الفطر انسان مسلمان باید پیش از عید باید تا به پیش از نمازی عید باید بدی این یعنی باید برای فقیر و مسکین بدی که بر خود لباس بخره این باید برای فقیر مسکین بدی که او مصاف عیدو خدا بکنه صدقه فطر برکتی داره میشه و مقدارش چقدر است؟ مقدار صدقه فطر هر انسان از هر کسی که متکفل سر چیزش از نفقه ایشه مثلا ما کفل نفقی خود هستی، از خانمت هستی، از اولادایت هستی، از هر کسی که هستی که تو برای زنان نفقیش رو پیدا می حق داره برای تو پیز سرقید یا زکات پتر بر از, از، ازور بیجید. سر هر نفر خودکار یک چاره گندم بشه. برای فقیر کدامش خوبتر از خوب است یا گندمش خوبتر است؟ هر کدامش که مناسبتر است امور پشن. زکات پتر تجزیه نم بنام یک نفر زکات فامیل خدا نمیشه که از فامیل خودن برای چهار نفر فقیر داد یک نفر باید برای یک فقیر مستحق برای که بتیم در بازون زیاد رواج هست مولوی سایبا قار نشان اگر قاری و مولوی هست فقیر است مستحق است خدا مستحق میدانه و مستحق هست میگیره درست اما او کسی که قاری قران است و یا عالم است یا مولوی است حداقل به اندازه 40 هزار افغانی که در حدود هزار افغانی همو انسان در لیست غنی ها حساب میشه بهو اندازه که امکانات داره و یا غنی هست باغ داره زمین داره خانه داره امکانات داره نخورن اینمی زکات زکات و صدقه فتر چی است اینا از دیدای قانونی میگن بس که یک نفر کالای خودمه شویا وقتی که کالا میش یک چرک از اولیت میشه. اینی او چرکین خوردنش برای هر کس جایز نیست. برای هر حرام است که بخوره. چی بخوره؟ انسان که از تشنگی میمره. اگر یک انسان از تشنگی میمره، دیگه او نیست. نمی آوی چرکین هم بخوره برایش میاد درست. برای او حلال هست. بنا ان که فقیر است، اینمی زکات چک شده و چتل شدنه، زکات یعنی چی؟ یعنی پاک کردن. شما ببین اصلا زکات در زبان عربی بافتر داره میگه زف وقتی که چی میگن میگه زکات الحیوان حلالش میگه خوش میریزه یعنی خور نمپاکش که سبب میکروبا و امراض است این میریزه این حال وقتی که زکات فطره یا زکات مال خدا کس میکشه این مثل اونم چطلی های مال است که مال نمی و این پسش مانده فقط کسی ایده بگیره که مستحق است مجبور است کار کردن نمیتونه توانایی نداره شب و روزش مسکین است فقیر است آنی چوی خدا ندارد آنی شب خدا ندارد یتیم است بیچاره است از دست سپور افتاده است او رو نقرار بگیره او درست هست. اما برای هر کس دادم بر خود گردن خود انسان بسته میشه که اگر مثلا به حساب شناخو به حساب خوش ساختن فلان و فلان خان تو که اگر یک خوش میسید 300 400 رو زکات بده تا برش ندین 1 500 رو برش تحفه بده گردن از اون بسته نمیشه گردن تو اون بسته نمیشه اما پس این زکاتفه باید برای فقرها و مسکین ها چه وقت باید بدیم؟ از سر ایمانی ها باید انسان ها بدیم. تا چه وقت تا پیشت نماز اید؟ مجرد که نماز اید خونده شد باز اگر کس صدقه فطر میدهد اون مثل خیرات عادی است صدقه باز او وقت درست نیست باید قبلا انسان بده و راو ها هم بتانند که در روزایی خوشی بگویند ایده ما مسلمان ها که است این دو واوره نیست که مصارفه به جای میکنه و رنگا رو ناقیناتی هر طرف باز میکنن نه باید با اساس یک هدف است آدم مسلمان همیشه هدفمند میباشد مثلا ما در تفسیر شروع کردیم انسان هدفمند من سالانوال بود خداوند خیرش بته حجر برش بته اجل سوا را پیجا دانه قرآن از بازار هدیه کرد از هر کسی که هر عرف از قرآن را میخونه خداوند بر سالانوال سای بود. چونشک ما اینا میگیم در هر چیز مزیث سهم بگیریم وقتی که درس قران را میگیم باش شریف بگیریم مدرسه قران را میگیم امرایز و امکاری بکنیم غریب بریم برای غریب کمک می‌کنیم در صورتی که قلب مهربان باشه باشیم رحمت خداوند بالای منازل میشه اما این کسی که دغص بیذار به سری خود مانده بسیاری کساس مثلا پیش از رمضان سه وقت نان می خورد در رمضان بسیاری کساس چهار وقت نان می خورد عقل شاو سو بخد عقل سو بخشت دو وقته در پشتشوی میخورد سحری در سحری خود تو کمک نمیخوره، بسته کاسی تر کدگی شاکازه رو که تر نکنم و شروع رو نخوره، کمرش مشکنه کی کردی فلانی میگه مگو حالا اصلا من پیجد رمزان خوتیگاکی ملایی میخورید مال کارتانکی ملایی مربا میکنه. چون حق توب و چاشت خدا پشتشوی میخوره؟ بوس شوشته تکراری اگین بوس شوشته تکراری کرده حقشو بود در شامکی نمی‌دونم وقتی که خوا هم خورده میره یک وقت سردی می‌کنه که آر قش ترش کرده قواریش بوی میده هنوز شکمش داچن کلان شده و این میگه ماه مبارک رمضان تو باید تقوا حاصل می‌کردی در ماه مبارک رمضان پیشوری باید داغ پیدا بکنه از نماز زیاد در ماه مبارک رمضان باید که شکمت قرقر کنه از گشنگی در ماه مبارک رمضان یکم رنگ تغییر بکنه در ماه مبارک رمضان یک فقید دست دعا را بالا بکنن که پروردگار اینی نفر برام کمک از خدا کمک کنه، کمک کنه. اونج خداوند هست که سایه تو داخل میکنه که مورد رحمت خداوند است. ببین برادرای عزیز از ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم. از رحمت خداوند استفاده بکنیم با قلب مهربان. از مغفرت خداوند استفاده بکنیم با توبه کردن. من دیروز اشتباه میکردم. الله خداوند ذات رحمان و است. بخشاینده است. بر من فرصت داد. خیر از بندیم اشتباه کردیم. یا باقیال خیر، یا باقی شر بر ازود. سلام میکنم و اگر کسایی که در طرف گمراهی و راهی می حرکت کنیم پس دل بخورید گپای زش می زدی، مزاحقای بی جای می سر مردم مردم داو می زدی، ناکی مردم عزیز تو به تکلیف بودن. پیش خود فکر کو و خدا کسی که اهلی منطقه سر شهادت ندا که خوب آدم است، اگر روی جنت بیبینه، روی جنت نمی بینه که اهلی منطقه سر شهادت ندا که خوب آدم بادم. ما که ساز واقتی که میمره باور بکا حتی از دان من برام خدا نابخشه و ضد مرتب و مدرسه و دین و ضد درس و قرآن و ضد اگر بمره بابا تو فکری ندیس میگی خدا نابخشه ایس خدای دیوانه کی دخو خود دی دین فکرت فزده و دا خو بیسچون زدن قاند به پا را کار کو ذخبی سچوژد ان اکرمکم من اللہ یتقم اتقکم ات نما دل یعنی خدای چه او بهتر حق انسان باشه فقط تقوا ولری نه خاهم بوی دلری قوم باری خدای خزرپ نزلی لکه جدا همیشه د قرآن پس زد کار کی او کسی که اکرمکم من اللہ یتقم اتقکم خدا بازی میتر. بهترینتان خدا میگه که با تقوه است با تقوه هزاره باشه میتونه با تقوه فارسیوان باشه، پشجون باشه، تاجیک باشه، حتی تا روسی باشه، آمریکایی باشه، اروپایی باشه، وقتی که تقوا دست خداوند میگه بهترین است. ولی ما امروز هم در افغانستان کسایی داریم که میگم من مسلمان هستم، به زبان میگم مسلمان هستم، لکن خدای عزوجل برش نه تو مسلمان نیستی. واژه مسلمانیم خدای و تو مسلمان نیه. تو که تو خدای قرآن نمنه. تو خدای خبره نمنه. تجمع دا دا غیبت دا تو جمعه در ازت غیبت بپاره تو در مسجد میای دولی مسجد به خاطر می میای تو به خاطر این میای که در بین مردم جنگ فرتی در دا داخل خانه خدا غیبت کردن غضب خدا را انسان سر انسان نازل میشن کاری که در دا داخل مسجد قصه می با هر قصش عبادت‌هاش دور میشن پس انسان باید رجوع بکنه به خدای عزوجه مای مغفرت است و مای رحمت است به خاطر ازی انسان باید خبر نجه وقتی که کسی حقه برش میگه اگر ما بر شما حقه نگوییم اگر ما بر شما حقه نگوییم دست شما در روز قیامت در خن ما میباشیم. چرا مولوی ظالم چرا استاد خاین چرا قاری خاین چرا نگفتی حقه بر ما ما مجبور استیم بر بگوییم که برادر عزیز کار نکو که غذاب خدا سرت نازل میشه. کار نکو که غذب خدا سرت نازل میشه. بسیاری کسا از ماه مبارک رمضان خلاص میکنن. میره بر زن خود کالای گاچ میخرن. چادر گاش میخرن. کالای پنجابی میخرن. رنگ ناخون میخرن. در روز عید غذب خدا را سر خود نازم میخرن. خانمش به سطر، پیشند کدگی، آراش کدگی، در موتر کتش استوار میشه، دا تا مردای نامحرم کتش بالا میشه سنوش میکنه و با ای هم نگه من مورد رحمت خداونده. آدم مسلمان برای خانم خود نگه خانم جان، خواهر جان، دختر جان، از خدا به از خدا به ساتر کو. اگه اگر تو ساتر نکنی من جمله دو سا میرم. و انسانی که خانمش که نامحرم قسم میکنه و گف می و ای خرار تو نشتایل داره تا ای در احادیس آمده که ای دیاست است و داخل جنت نمیشن از رحمت خدا محروم میشن ماهی مبارک رو ختم کردیم وقتی که عید مین به ارل خریدن لباسای اولادایتان متوجه باشین برادر مسلمان لباس را نخر که غزب خدا سر فامیل بیاید لباس را نخر که سر خودت غزب خدا بیاید کسی چادر گاچ میقرد در گاچ سطر نمیشه در لباس های پنجابی که بقلا و رانهای زنها معلوم میشه مردش بیمان است و این خداوند نمی بخشه ازی خاطر لباس پنجابی بر دخترها و خانمهایتان نخرین لباس های تنگ نخرین و لباسای اون دوها را نخرین کس که لباس اون دوره بر اولاد خود می خره من تشبّه به قوم ف هو منهم پیغمبر خدا می یکی مشابه قوم می سازه؟ در جمله از وا محسوب میشه خود در جمله اون دوها محسوب نکنیم. چرا مردم نام اولاد خود گاتمر نام اولاد خود نامای اون دوها را میمانند به خاطر که در قلبش محبت اون دو پیدا شده چرا نام حضور سره اولاد خود میماند نام اونجوری که سر اولاد خود میمانه نام خدا خوشش نامد نامی عبدالرحمن خوشش نامد عبدالرحیم خوشش نامد عبد خوشش نامد. و عبد خوشش نامد که به خدا نام نام خدا را پیشریش روش کلمه یعنی بنده الله بنده رحمان بنده رحیم که که نام حضور میماند چی هدف داره نام پیغمبر خوشش نامد ابراهیم و اسماعیل و محمد خوشش نامد که نام بچه خدا محمد بارن. اون دو خوشش آمد از این خاطر پیغمبر خدا میگه که من تشبه به قومین فهو و منهم کسی خدا در لباس خود در قواره خود در نام خود در حرکات خود مثل اوندوها ساخت در روز قیامت در زیر اون دوها و بابا حشر میشه به با. بر... تقوای ما این که رمضان حاصل بکنیم در روز قیامت خدا در زیر پرچم بابانانک داخل نکنیم در زیر پرچم محمد و رسول الله داخل کنیم و وقتی میشه که ما محبت رسول خدا رو در قلب داشته باشیم لباس اولادای ما مثل لباس بیبی بی فاطمه و بیبی بی, بی باشه بیبی بی این که بی, بی فاطمه و بیبی بی چه بی قسم لباس داشتن آیا پنجابی می پوشیدن آیا رسول خدا از امت خود خوش میشکه یک از امت پیغمبر لباس اون دو رو پوشیده باشه در سرکت ها بگرده آیا پیغمبری خدا از او کس خوش میشه که در 27 ماروسی میکنه زن خدا در اوی سرک میکشه و فلم بردارا او را حکاسی میکنه روزه بدانشه آیا این تقوی ها حاصل کردن؟ آیا مردهایی که در هتل‌ها زن‌ها را می‌بینند، گارسنو هستن و فیلم‌بردارا هستن، این برای ما محرم هستن؟ آیا پیغمبر خدا از این خوشحال میشه و راضی هست؟ چرا خدا فرپ میتیم؟ نباید خدا فریب بتیم. اگر کس نام اولادش نام اون دوست فوراً تبدیل کنه در ماهی مبارک رمضان. بگوی خدایا بد کردم، خدایا اشتباه کردم، خدایا نمی‌فهمیدم، خدایا امروز فهمیدم، خدایا امروز رجوع کردیم به بارگاهی تو. اینجاست که روزی ازی بشن. اینجاست که در لیست مسخطهایی که مخفریت خداوند سرش داخل شده در لیست مخفریت شدهگان داخل میشیم. این برادرای عزیز توبه صادقانه بکنیم، دست خود رو الله جل جلاله بلند بکنه بگیم پروردگارا ما توبه کردیم، الوه ما اشتباه کردیم، الهی ما غلطی کردیم، الهی ما قبل از رمضان رابطه ما با مسجد و با قرآن قطع بود، خدایا ما شروع کردیم. بعد ازی تعهد میکنیم که رابطه خود با مسجد و با قرآن و با دین نکنیم. الهی پروردگار تو ما را در لیست مغفرت شدگان شامل بکنیم. الهی ما روزه گرفتیم. لکن روزی که بتانه رضایت تو رازل بکنه گرفتا نمیتانیم. الهی بیچاره واجد استیم. خدا آیا ما را به برکت دهی مغفرتت. خدایا در جمله کسای داخل که مورد مغفرت تو قرار گرفتیم. الهی بر ما توفیق بده که با خدا خودمون باشیم، خانه خدا خودمون باشیم، خور برادر خدا متوجه باشیم، لباس خدا توجیه باشیم، گوش های خودمون باشیم که گوش های ما هم روزدار باشه، زبان ما هم روزدار باشه، خدای تو بر ما توفیق نصیب کن که به راه راست و المستقیم حرکت بکنیم. الهی هر کسی که به خاطر نفع افغانستان کار میکنه، به خاطر اعلای کلمت الله کار میکنه، به خاطر که قانون قران تطبیق و کار میکنه، الهی در در هر جای افغانستان که باشه خدای تو بابرایشان مدد و همکاری بکونید الای هر کسی که به ملت ما زدید وطن ما و به خاطر بلند کردن پرچم کفر در اینجا مبارزه میکنه الای تو که سکوم مثل و تو رسوایشان کن مثل کمونستا و روسا که در افغانستان تبوا و علا کردید الای پروردگار آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه در آخرین لحظاتی که وقت مرگ ما و وقت جان کندن است پروردگار آخرین کلمه را از زبان ما کلمه لى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم